شنوتو با افتخار تقدیم می کند شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما و عزیز و فریخته برنامه کتاب شب و این هفته رمان بینوایان اثر ویکتور نویسنده بزرگ فرانسوی با تنظیم رادیویی آقای مجتبا گلستانی با ما همراه باشید درباره این رمان صحبت گلستانی سلام عرض میکنم خوش آمد دیگم خدمتتون و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و قبول زحمت کردید بسیار سپاسگزارم مرز سلام خدمت شما و همه شنوندگان را تهران خوشحالم که با هم گفتگو میکنیم اون هم درباره باره رمان بزرگی رومان بزرگ تاریخ من میخوام جناب گلستانی قبل از اینکه که وارده بحث این رومان من بیشیم از شما سوال کنم که اهمیت این کلاسیک ها چیه و ضرورت خوندن این کلاسیک ها خصوصا برای جوانان من به نویسندگی و ادبیات من خیلی دوستان جوانترم که وقتی در مورد ادبیات صحبت میکنیم در جلسات ادبی تو ادبی نقد ادبی یا به حال ارتب و حال ارتباطی داریم از طریق فضای مجازی مثل اینترنت و ها و ایمیل با هم دیگه صحبت می‌کنیم از من همیشه کلاس‌های داستان نویسی میخوان که کجا شرکت بکنند. فنون داستان نویسی رو یاد بگیرم من همیشه بهشون یه توصیه میکنم اون همیگه کلاسیکا رو بخونید داستایفسکی بخونید همین بینمایان رو بخونید سوی بخونید چه خوف بخونید نزدیک تر بشین چه خوف بخونید به عنوان آله یه داستان کوتاه نویس بزرگ و دلیل توصیه هم این هست که اصول طایعی و اساسی داستان نویسی در ها به شدت رعایت میشه به جزئیاتش به دقایقش خیلی دقت داشتن من به خیلی از حتی داستان نویسایی که امروز به کارهای فرمی علاقه دارن میخوان یه سری از معیارها رو بشکنن رفتارهایی رو انجام بدن که نویسندگان رمان پست مدرن انجام میدن من همیشه توصیه میکنم که شما هر وقت نشستید ای یک رمان بزرگ هنر بزرگی قرن و 19 تولید بکنید و بعد بیانی این ها رو بشکنید من اون موقع به شما خواهم گفت که شما تونستید گامی ادبیات تو وارد ادید امروز مثلا تو فضای ادبی ما از بین بردن شکستن پیرنگ مد ادبی شده اما واقعا چقدر نویسنده‌ای که این کارو میکنید تسلط به پیرنگ داره که بخواد حالا پیرنگ پیرنگو به چالش بکشه من گماه میکنم گاهی وقتها این به چالش ها بیشتر از سر ناتوانی است در به کار بردن اینها این توانایی که در واقع پرسش ایجاد شده باشه برای نویسنده یا شاعری که میخواد یک فن ادبی رو زیر سوال برای چون پاسخگوش نیست در ضرورت شغلش کرده باشه بله یا ضرورت اون تغییر حس شده باشه مم. کلاسیک ها به ما این رو یاد میدن که واقعا ادبیات ها داستانی چیست یعنی یارهای اصلی داوری حتی درباره شخصیت پردازی درباره فرم درباره در, در حتی داستان رو به دستمون میدن لیست کلاسیک ها هم کم نیست بارزاك گوستاف فلوبر چارلز دیکنز اینها همه نویسنده های بزرگی هستن که فکر نمی کنم یک نویسنده قرار باشه یک نویسنده بزرگی بشه گامی در ادبیات برداره و نه فقط نیا نخونده باشه که مسلط روی اینها نباشه و حالا درباره خود ویکتور روگو تبدیل تر ویکتور هوجو یکی از همین هزینه‌هایی که بله. از همین بازور گاز که جای شخصیتش چه در هزم دوره حیات خودش در قرن نوزدهم چه امروز بعد از گذشته شاید بیش از یک قرن از در او رشک برانگیزه یعنی نویسنده‌ای که در سراسر دنیا اعتبار عجیبی داشتی در دوره حیاتش باتوجه به اینکه بخش عمده از آفریقام مستعمره فرانسه بوده شهورت او و اعتبار ادبی ویکتور هوجو زبان زد بوده یک نکته در مورد ویکتور هوجو بگم که خیلی میاد داره بیگتر یکی از پدران و پایگوزاران ادبیات تطبیقی هست. اولین نشستهای ادبیات تطبیقی که در نیمه دوم قرن نووزدهم برگزار شد در فرانسه اصلا به ریاست ویکتور هوگو برگزار شده بود و ادبیات تطبیقی خیلی براش اهمیت داشت ادبیات شرق ویژه حتی در مورد ایران هم اطلاعات فراوانی داشت ویکتور هوگو شعرهایی داره با مضمون نقد سلطنت در ایران که پادشاه ایران شبید در تفرس هست شبیه در, در کوچ کردن خوش در حوالی تهران و نقد کرده سیستم سلطنتی و پادشاهی اون روزگار ایران رو از طرف دیگر هم اشاره بکنم که ما ویکتور هوگو رو پدر به نوعی رمانتیسیسم می‌بوردیم. بله. میشناسیم که این همیت ویکتور هوگو میده به عنوان پدر و پایه‌گذار یک مکتب ادبی که حالا من سعی میکنم در مورد نشونه‌هاش تو همین رمان، کشور دل‌های مکاتب پایدارتر و رمان‌تر بوده و اثراتش در حامی عاشقای ادبی تقریبا مشهوره. به منو همین توزیه بله. می‌دین که یادمون باشه ادبیات به ها با امر رمانتیک سر کار خیلی بیشتری داره. حالا مکتبی به نام رمانتیسیسم هم در قرن 19 هم پا میگیره در برابر عقل که در اروپا وجود داره در فلسفه به ویژه وجود داره که اینها معتقد هستن که باید به عواطف انسانی برگردیم به احساسات انسانی برگردیم که به نوعی حالا ویکتور هوگو یکی از اونهاست و بینویان هم همینطوره با یک دو تفاوت خیلی مهم اون هم اهمیت اجتماعی و سیاسی چه اون چیزی که در رومان باستا پیدا کرده و چه اون تأثیرهایی که بی داشته و باز هم حضور تاریخ در بی کل که درمانش بیشتر صحبت آره میخواستم اتفاق در مورد سؤال کنم اتفاق قبل از اون میخواهم که تأثیر بی نوایان. و هوگوره در ادبیات بعد از خودشون چه در فرانسه چه در خارج از فرانسه و کشورهای دیگه امروز حالا در فرانسه وقتی که صحبت میشه نسلی از نویسندگان هستند که به اینکه شدیداً خودشون رو مأرعون کارهایی میدانن به ویژه در زبان خود مقوله زبان در فرانسه اما انقدر تاثیر ویکتور هوگو به ویژه هنگامی که وارد فرهنگ عامه فرانسویان هم شده زیاد بوده باری رو بر دوش نویسندگان گذشته که بعضا های زیادی هم با تو هوگو شده در نیمه نخست قرن 20 کم نیستن البته این اتفاقات مثلا الان نسلی از نویسندگان در کلمبیا در آمریکای لاتین وجود دارن که اصلا اینها ایدئولوژیشون مخالفت با گاویو گارسیا مارکزه سایه سنگین مارکزه هوگو هم چنین نقشی رو داشته چه در ادبیات فرانسوی و چه در ادبیات اروپایی در ادبیات ما هم حتی تاثیر گذاشته ما بسیاری از نوشته های و 40 رو که ببینیم ارجاعات درونی و متا به بی ویکتور هوگو ارجاعاتی که میتونه بگیم تأثیر اموتون هستن از ویکتور هاگو و باز تأثیری که مثلا بینبایان توی سینما داشته چندین نسخه سینمایی داشته چندین نسخه انیمیشن داشته میخوام می رو بگم که نه فقط در ادبیات جهان که حتی وارد فرهنگ آمه شده گروهی از روشن فکران فرانسوی از این جهت برابر ویکتور هوگو و بنیویان مقاومت میکنن چون معتقد هستن که ویکتور هوگو ورودش به عرصه فرهنگ عامه یک جنبه های غیر روشن فکری داره در حالی که از طرف دیگری اگر بخوام نگاه بکنیم بنیویان بنیویان همه اهمیتش این هست که تونسته این همه مخاطب و اعتبار داشته ولی به لحاظ ادبی بسیاری هستن که معتقدن که امروز بنیویان تبدیل به یک کلیشه ادبی شده و این هست این واکنش شوپره وشان فکر های درباره برای بینوایا. وای مشتاق گلستانی درباره رمان بینوایا اثر ویکتور گو صحبت می کنیم. با ما همراه باشید. www.shinoto.com روی گلستانی درباره اهمیت همزمانی این رمان با وقایع تاریخی صحبتی داشته باشه تاش تا می‌کنه خب رمان 1862 یا 63 منتشر شده خود هوگو هم شاید فکر میکنم حدود 14 تا سال بعد درگذشته اما وقایه ای که رمان در بر میگیره تلاتوم و آشوب های اجتماعی است که فرانسه باش درگیر بوده اوایل قرن 19 مهمترین نکته این نیست که رمان بینوایان چقدر اون تاریخ رو بازتاب داده مهمترین نکته این هست که بینوایان حاصل اون تاریخ در واقع آگاهانه رو به تاریخ دا کرده مننا میخواستم بگم که ناخود آگاه سیاسی ویکتور هوگو قال و چنین رومانی تألیف میشه و تولید میشه. یه بخشی آگاهی های ویکتور هوگو هست که می در رمان جناحبندی های سیاسی از جمله سلطنت طلب ها،, ها کسانی که آناشیست بودن حالا به معنای امروزیش یا گرایش هایی داشتن که گرایش‌های به معنای امروزی چپتری بودن همه این جنناهبندی ها در انقلاب فرانسه مشخص هست حتی کسانی که با بسته به کلیسا هستن که درستانی که زدیت با کلیسا دارند و رنجهای های مردم به واسطه این اتفاقات به این مشکلاتی که پیش میاد اینها آگاهی های سیاسی است که خود او به عنوان یک نویسنده میتونه تو رمان تعبیه کرده باشه اما به لحاظ زبانی به لحاظ منطق روایی داستان به لحاظ شخصیت های اجتماعی که دیگه تو پس زمینه نیستن بلکه شخصیت های اصلی رمان هستن اینجا دیگه به یه معنا اگر مدرن تر صحبت بکنیم قرن 20 صحبت بکنیم اینا تاریخی که دیگه داره صحبت میکنه ما بهش به عنوان یک سند سیاسی و اجتماعی نگاه میکنیم از انقلاب فرانسه در واقع شما میبینید که هر شخصیتی در این رمان داره با لحن و صدایی که توی انقلاب فرانسه داشته حرف میزنه با لحن و صدایی که توی طبقات اجتماعی هست داره حرف میزنه و طبیعتاً چون ویکتور هوگو و نویسنده این رمان، و میخوام بگم رومان به لحاظ پایگاه تاریخی به اون فضا نزدیکتره امروز می‌تونه به عنوان تاریخ روایتگر تاریخ نه تاریخ نویسی رسمی که تاریخ در مقام داستان بله. روایت بشه و یک سند بزرگ تاریخی در اختیار نسل بعدی باشه با این تعدد شخصیت ها شخصیت پردازی صورت گرفته؟ ما نکته اتفاقاً اتفان درمان کلاسیکهایی که صحبت کردیم بخش اول مم. بحثمون این بود که ما در کلاسیک ها با شخصیت پرزی خیلی عمیق چند بعدی و با فضاسازی هایی که به کمک این شخصیت ها میان با دیالوگ‌های بسیار خوب و شگفتانگیزی که به کمک این شخصیتها میان و با توجه به اینکه نویسندگان قرن نوده و ۱ بسیار وسواس رالیستی داشتن در اینکه اون چیزی که می بازنمایی با از واقعیت باشه. باشه بله انطباق داشته باشه برای ویکتور هوگو که اصلا انطباق با طبیعت حتی داشته باشه به عنوان نویسنده رمانتیست است برای همین وقتی که این شخصیت پردازی ها رو می‌بینیم جوانب مختلفشون رو می‌بینیم در یک سنوات دراز و طولانی شخصیتی که مثلا 40 سال عمرش ما در این داستان شاهدیم مثلا دقیقاً. ببینیم تغییراتش چطوره چه وضعیتی پیدا می‌کنه تو موقعیت می چه واکنشی اصلا نشون بله. میده همون شخصیت. مثلا شخصیت جان رو ببینید چه شده که دوباره به زندان میره فراری که دوباره انجام میده همون شخصیتی که انگار یک گاریچی رو داره دوباره نجات میده فرماندهش رو قرار نجات بده اما همون شخصیتی که یک بار از زندان فرار کرده و این دوتا کار رو که ما پیش زمینه شده این دوباره انجام, انجام میده به لحاظ شخصیت پردازی به لحاظ دیالوگ نویسی این رمان ها واقعا یک کلاس آموزشی غنی هستند اما این نکته ی فقط برای مباغی میمونه که امروز از منظر تاریخی که ما نگاه می بسیاری از اتفاقات داستان بسیاری از جهتگیری‌هایی که داستان به سراغش میره شاید امروز برای ما فانتزی تعبیر بشن شاید امروز برای ما خیلی هپی اندینگ حتی تعبیر بشن که من گمان میکنه وقتی رو تو بافت تاریخی خودش قرار میدیم وقتی ببینیم رمان متعلق به کدوم مکتب ادبی هست نگاه رمانتیکی ویکتور هوگو به سیاست حتی داره به جامعه داره به روابط انسانی به احساساتشون داره به خود مقوله داره که ببینید رمان اتفاقا برجسته است از عشق جانوال جان شروع میشه به مردم م به کودکان به کزت و بعد عشق خود کوزت وقتی که بزرگ شده و حوادث عاشقانه که اتفاق میفته ما میفهمیم که بعد ویکتور هوگو و بینامون رو تو ظرف تاریخیش مقدار داوری بکنیم اتفاقاتی که با توجه به وسواس های مثل ویکتور هوگو حتما تو اون ظرف زمانی اتفاق افتادنشون محتمل بوده من. ولی امروز فضای تاریخی ما انقدر تغییر کرده که اونها رو یه مقداری باورناپذیر میدونیم یه توضیح فقط برای شنوانده همون بدم خب رمان ویکتور هاگو رمان خیلی بزرگی هست خیلی بلندی هست در واقع با ترجمه فارسی که ما داریم با اون فونت بسیار ریزش بیش از هزار صف هست اون چیزی که فکر میکنم این شیش هفت شب گذنش چیزی جز خلاصه پیرنگی که ویکتور بله واقعا جای نبود, نبود. بله. و شاید اگر غنا بود که ما این رمان رو تنظیم رادی بکنیم دست کم در بهترین حالت شاید یکی دو ماه فرصت نیاز داشتیم تا این رمان رو بتونیم باسخانی بکنیم بنابراین فقط اینکه مخاطبان آشنا باشن که در این رمان چه گذشتند دقایق خوشی رو با این رمان داشته باشن و بعد برن سراغ متنش ترجمه مرحوم مستان چطوره کیفیت این ترجمه خوب به نظر تو دربار ترجمه مرحوم مستوان خب گفته‌های زیادی وجود داره و میدونیم که مرهم مستقان جزو گروهی از نویسندگان بودند که در اووایل در حقیقت قرن چهاردهم شمسی در کشورمون در مجلات منشات ادبی کار میکردن و یک ژان ادبی به نام پاورقی نویسی رو بهش شکل داده بودن که عمدتا هم رمان هایی بود که سبقه تاریخی داشتن رمان تاریخی بودند اینها بعداً چاپ شدند و رمان تاریخی عامپند فارسی رو به منو به شکل داده بودند این جریان فقط در کشور ما هم نبوده هم زمان با ما مثلا نویسنده بزرگ برنده جایزه نوبل نجیب فوز هم در مصر اولین رمان‌هاش رمان‌های تاریخی است در مورد مصر باستان بازیش به عظمت مصر باستان اگرچه سبقه سیاسی هم داره انتقاد از وضع موجود رمان‌های تاریخی هم که در کشور ما منتشر میشه در دهه‌های 20 و چهل هم همین ویژگی رو داشتن تحت عنوان پاورقی از این جهت برخی معتقدند که این ترجمه ترجمه بی‌نوایان که حالا تاثیر بی‌نوای توان رومان های تاریخی هم خودش یه بحث مفصله هم بین نوایان هم جنگ و سول که اما یه روز هم بشتیم برنامده هم تلسوی صحبت بکنم و جنگ و سول اینا تاثیرشون روی این رومان تاریخی ها خیلی مفصله و خیلی جای بحث داره اما بسیار متقدم با این سبقهی ای که مرحوم مستوان داشته رنگ و بوی ترجمه او هم همین ویژگی پاورقی نویسی رو داره اما من در جایی میخوندم که آقای محسن سلمانی گفته بودم من, من ترجمه آقای مستان رو با متن زبان دیگری انتباق دادم و اون ترجمه نسبت به اون چیزی که باید در زبان فارسیش از 70 سال پیش داشته باشه ترجمه خیلی خوبی است. در مجموع ترجمه ترجمه است. من شده مندگان رو دعوت میکنم که ماهی از زندگیشون رو صرف سرف دوانی بینه ما همین تجربه رو حتی بخونم بسیار مشکرم جناب گرستانی از همراهیتون با برنامه ما همینطور از شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید خدا نگه داری ارائه دهندگی پادکست های سوتی فارسی